دشمن ما میخواد که اون رابطه رو بشکنه و این رو توسط گناهان اعتراف نشده عملی میکنه. به آنچه که از زندگی داوود خواهی ما مخت، به دقت گوش کنید. به درس دیگری از دانشکده کتاب مقدس خوش آمدید. گفتیم که نوشتجات تاریخی عهد قدیم به سه دست تقسیم میشن. اول سه کتاب تاریخی تمثیلی شامل یوشه داوران و روت، و سه کتاب آخر که به کتاب‌های بعد از اسارت معروف هستند، عبارتند از ازران همیا و استر و در بین این دو دسته شش کتاب هست که تحت عنوان کتاب‌های تاریخ پادشاهان دست بندی شدند؟ کتاب‌های ساموئل پادشاهان و تواریخ وقتی که کتاب سموئیل رو بررسی می‌کنیم، به ای که از مهمترین شخصیت‌های کتاب مقدس برمیخوریم. چندین شخصیت در کتاب مقدس هستند که شخصیت‌های اصلی هستند. وقتی می‌بینید که چه مقدار فضا برای زندگی داوود اختصاص یافته میفهمید که او یکی از این شخصیت‌های مهم هست. نیمی از اول سمائیل و تمامی دوم سمائیل درباره داوود صحبت میکنه. داوود حدود نیمی از مزامیر رو نوشته و مطالعه اون به ما دیدگاهی از زندگی این مرد بزرگ رو میده. با توجه به میزان فضای اختصاص یافته به داستان زندگی داوود در کتاب مقدس میفهمیم که بدون شک داوود یکی از مردان بزرگ خدا در کتاب مقدس هست. ما بعضی از بابها رو در زندگی داوود بررسی کردیم. بابی رو دیدیم که داوود در اون پسرکی چوپان بود. دیدیم که داوود موسیقیدان بود، جنگجو بود، سردار بود، پناهنده بود و بالاخره شاه بود. اما وقتی به دوم سمایل باب یازده میرسیم باب طویل تاریکی رو در زندگی مرد ملاحظه میکنیم. کتاب مقدس اون بخش تاریک در زندگی داوود رو با جزئیات مشروح به ما عرضه میکنه ما میتونیم داوود گناهکار رو به دقت بررسی کنیم همونطور که در جلسه قبلی داوود گناهکار رو دیدیم سوالی برامون پیش اومد چطور این مرد مردی با قلبی خداجو و مشتاق انجام اراده خدا میتونه گناه کنه این مردی که در واقع مردی بسیار خدا ترس بود چطور میتونه دچار چنین لغزشی بشه ما در ماهیت گناه داوود چیزی میبینیم. کتاب مقدس سعی در لاپوشانی اون گناه نمی کنه. گناه داوود فرم شدیدی از گناه قتل و زنا بود چون که داوود وفاداریش رو فراموش کرد و زیر پا گذاشت. داوود زن اوریا رو گرفت و بعد هم اوریا رو به قتل رسوند. داوود به وفاداری مرد بزرگی مثل اوریا خیانت کرد. ما ماهیت گناه داوود رو ملاحظه کردیم و دیدیم که گناه او یک گناه واقعی بود. همینطور علت گناه او رو ملاحظه کردیم ما دیدیم که داوود گناه کرد چون انسان بود و هیچ انسانی مسرون از گناه نیست داوود گناه کرد چون که برخلاف اراده خدا در اورشلیم ماند داوود گناه کرد چون در اوج موفقیتش بود او در فراوانی بود آیا همه اون هشدارهایی رو که در کتاب تسنیه بود به خاطر میارید کلام خدا در تسنیه چنین میگه وقتی وارد سرزمین وعده میشید و به فراوانی میرسید زمانی که باید مراقب باشید اون زمانی که باید در خداوند قوی باشید چون اون زمانی که شما آسیب پذیر خواهید بود داوود آسیب پذیر بود چون که در فراوانی بود قدرت گناهو رو بر زمین زد اگرچه خدا او رو بخشید ما دیدیم که عواقب گناه او چه برسرش آورد وقتی داستان گناه داوود رو در دوم سموئیل می‌خونید در این زمان هست که می‌بینید داوود بیشترین بزرگی رو از خودش نشون داده منظورم این نیست که داوود چون گناه کرد مرد بزرگی بود. بلکه منظورم چیزیه که باید ضمن مطالعه داستان داوود خصوصاً عواقب گناه او به دنبالش باشید. داوود با واکنشی که نسبت به عواقب گناه از خودش نشون داد و برخوردی که با گناهش داشت بزرگیش رو نشون داد. یکی از موضوعات مورد توجه من در ضمن بررسی کتاب مقدس ارتباط و همبستگی هست که بین کتاب کتاب مقدس وجود داره. میخوام به یک پارچگی کتاب مقدس توجه کنید، یکی از چیزهای مهیج در مورد بررسی کتاب مقدس اینه که ببینید این کتاب ها چطور با همدیگه مرتبط میشن. مثلا وقتی که کتاب های تاریخی رو بررسی میکنید و بعد از اون به انبیا میرسید میفهمید که این انبیا در چه زمینه تاریخی زندگی کردند، موعظه کردند، رنج کشیدند و مردند. کتاب های تاریخی همچنین شما رو آماده میکنه که یکی از بزرگترین کتاب, های کتاب, های کتاب مقدس یعنی مزامیر رو درک کنید کتاب‌های تاریخی گاهی تاریخی از مزامیر به ما میدن مخصوصاً مزامیر داوود کتاب‌های تاریخی اطلاعات زندگی زندگی‌نامه‌ای داوود رو به ما میدن که سبب سهولت در درک مزامیر میشه مزامیر داوود و دوم سموئیل یازده تا هجده به طرزی زیبا کنار هم قرار میگیرند نه تنها در دوم سموئیل یازده تا هجده بلکه خصوصاً در مزامیر هست که در طی اون دوره تاریخ نوشته شده و حتی در دوره ای از زندگیش که شکست خورده مثلا مزمور پنجاه پنج زمانی نوشته شده که داوود خبردار میشه که اخی به پسر شب شالوم که رو رفعت کرده مشورت داده که در مقابل چشمان قوم اسرائیل بر بالای بام قصد با سیغه های پدرش همخواب بشه اگر بشنوید که بهترین دوست شما به پسرتون مشورت داده که به زن شما تجاوز کنه. چه حالی به شما دست میده این زمینه‌ای بود که داوود در اون مزمور پنج رو نوشت وقتی شما این مزمور رو با آگاهی از این زمینه بخونید میتونید این رو درک کنید در این زمان به یاد داشته باشید که داوود مزمور 23 را هم نوشت و گفت خداوند شبان من است و من محتاج به چیزی نخواهم بود و نزد آبهای راحت خواهم بود کاسه لبریز میشه و از بدی نخواهم ترسید مردی که مزمور 23 را نوشته تمام عمرش رو کنار چشم سارها نزد گوسفندان سفید ننشسته. او مردی نبوده که هرگز هیچ مشکلی نداشته باشه. او مردی بوده که مشکلات وحشتناکی داشته. در مزمور 55 داوود داود از حال هوای احساسی خودش با شما حرف میزنه. او میگه دل در سینه به درد آمده و روب و وحشت مرگ بر من مستولی شده است. ترس و لرز مرا در گرفته و دهشت بر من چیره گشته است. اما در میانی تمامی اون دهشت و چیزهایی که در اون دور از زندگیش اتفاق افتاده داوود میگه من خدا را میخوانم و خداوند مرا نجات میدهد. شبانگاه و بامداد و نیم روز و ناله میکنم و او صدایم را میشنود. این بزرگی داوود را به ما نشون میده. در مزمور پنجا پنج در یکی از وحشتناکترین لحظات شکست داوود در زندگیش او به ما نشون میده که چطور در شکست ها پیروز بشیم؟ داود در اون مزمور می نویسه زیرا دشمن من نیست که بر من تعنی می وگرنه تاپ می آوردم و بدخواه من نیست که در برابرم قد بر وگرنه از او پنهان می شدم بلکه تویی مرد هم تای من یار خالص و دوست نزدیکم که روزگاری با هم رفاقتی شیرین داشتیم آنگاه که با هم در خانه خدا گام می زدیم اخی برای داود مانند برای بود. وقتی داوود شنید که مردی که مانند پدر براش بود به او خیانت کرده و فرمان اون عمل وحشیانه رو داده، مزمور و پنج رو نوشت. در دوم سمایل زمانی که داوود از اورشلیم مقب نشینی می کنه و به بیابان فرار میکنه، در طول راه از شمعی دشنام میشنوه و در همون زمان مزمور سه رو می نویسه و در اون مزمور اینطور میگه. خداوندا چه خداوند دشمنانم. بسیاری بر ضد من برمیخیزند بسیاری درباره جان من میگویند برای او در خداوند نجاتی نیست این چیزی بود که شمعی وقتی به داوود دشنام میداد و سنگ پرت میکرد به او میگفت اما داوود در مزامور اینطور میگه اما تو ای خداوند سپر هستی به دورم جلال من و سرفرازنده من من این را از آنجا میدانم که در گذشته وقتی غرق در مشکلات بودم تو مرا نجات دادی وقتی داوود به گذشته نگاه میکنه میتونه نشانه های معجزات رو ببینه او وقتی به پاسخ دعاهاش در گذشته نگاه میکنه این اطمینان و این ایمان رو داره که در حال آینده به خدا اعتماد کنه در مزمور چهار داوود چیزی میگه که به این دوره از زندگیش برمیگرده داوود به ما میگه که اگر حال هوای احساسی ما پریشانی و افسردگیه و نمیتونیم بخوابیم اغلب اوقات به این دلیل که باید تصمیم بزرگی بگیریم او میگه که در نیمه های شب نمیتونسته به خوابه و این میتونست در دوره ی از زندگی او باشه که او تصمیمی در درونش میگیره. تصمیم او این بود. من قربانی شایسته ای تقدیم خواهم کرد و بر خداوند توکل خواهم نمود. من کاری رو که درسته انجام خواهم داد. داوود انگیزه انجام کارهای درست رو اینطور طور ذکر میکنه که با مردمی حاته شده بود که میگفتن کیست که بر ما احسان ک ما همه توسط افراد یwidehat شده ایم که دنبال کسی می‌گردند که کارهای نیکو بکند نه کارهای مسلحتی. وقتی می‌بینند که کسی کار درست انجام میده که واقعاً براشون ارزش داره برکت عظیمی می‌گیرند و چیزی رو که می‌بینند به خدا نسبت میدن در مزمور چهار داوود تصمیم میگیره که قربانی شایسته تقدیم کنه و به خدا توکل کنه بعد از اون داوود میتونست آرامش داشته باشه و بخوابه مفسران بر این اقیدن که مزمور چهار زمانی نوشته شده که داوود داشت با عواقب به گناهانش دست و پنجه نرم می کرد. در مزمور 23 آیه 3 داود میگه جان مرا تازه میسازد و به خاطر نام خیش به راه های ادالت هدایت هم می فرماید. وقتی خداوند ما رو وادار می کنه که تسلیم بشیم و به این واقعیت اعتراف کنیم که ما گوسفندیم و او شبان ماست دوباره برمیخیزیم ما فراموش میکنیم که شبان کیه و گوشتوان کیه و این زمانی که ما نیاز داریم تازه بشیم ما فراموش میکنیم که شبان کیه و گوشتوان کیه این زمانیه که ما نیاز داریم تازه بشیم وقتی که تصمیم میگیریم نقش شبان را بازی کنیم اون علفهای سبز خشک میشند و اون آبهای راحت مواج میشند و کاسه های پر خالی این زمانی که ما نیاز به تازگی داریم اما وقتی ما نیاز داریم تازه بشیم خدا چطور این کار رو میکنه خدا کاری عملی میکنه داوود این رو اینطور بیان میکنه جان مرا تازه میسازد چطور مرا به راه های درست و یا ادالت هدایت میکند به خاطر نام خودش وقتی شما به تازه شدن و تجربه ای تازه کننده نیاز دارید فکر میکنید کنید لازمش چیه برای خیلی ها میتونه این باشه به کلیسا رفتن دست دادن با خادم کلیسا و گفتن اینکه من احتیاج به تازگی دارم. شاید این یه جور تجربه دعا کردن باشه. این میتونه از اون دست تجربه ها باشه. میتونه خیلی مهم باشه، اما در واقع خدا بیشتر اهل عمل هست. خدا میگه گوش کنید. وقتی نیاز دارید که تازه بشید، دوست دارم شما رو اینطور تازه کنم. بیایید و چند سالی در راه های پارسایی گام بردارید و وقتی در اون راه رفتید راه‌های پارسایی جان شما را تازه می‌کنه این چیزیه که شما در دوم سموئیل با پای 11 تا 18 می‌بینید که در زندگی داوود اتفاق می‌افته داوود تصمیم گرفته که کارهای درست انجام بده قربانی شایسته ای تقدیم کنه و بر خدا توکل کنه داوود خودش رو تسلیم خدا کرده و گفته به خاطر نام تو میآیم و در راه‌های ادالت گام برمیدارم حالا داوود سال ها در اون راه گام بر می داره. وقتی داوود در اون راه ها گام بر می داره و تنبیه و عواقب گناهش رو می بینه فیض خدا رو دریافت می کنه تا کارهای درست انجام بده. وقتی داوود به تنبیه خدا و تمامی عواقب گناهش تن میده، خدا جان داوود رو تازه می کنه. او به مدت چهل سال پادشاه بود. شانزده سال قبل از گناهش پادشاه بود. وقتی که گناه کرد و زمانی در راه های گام برداشت، خدا جان او رو تازه کرد و پادشاهیش را برگرداند. خدا او رو به تختش برگرداند و داوود به عنوان بهترین پادشاهی که اسرائیل به خود دیده بود به مدت 24 سال بعد از گناهش حکومت کرد. وقتی داوود متعهد شد که در راه های پارسایی گام برداره، این واقعا برای او چه مفهومی داشت؟ خب اون راه های پارسایی با چیزهای زیادی همراه بود اما با اعتراف و توبه شروع شد و این جایی بود که داوود به چنان شخصیت زیبایی تبدیل شد داوود پادشاه بود برای او گفتن اینکه من گناه کارم، خطا کرده ام یا منو ببخش آسون نبود چرا که او پادشاه قدرتمندترین قوم دنیا بود اما وقتی کسی نخواد اون حرفها رو بزنه جانش تازه نمیشه چون در راههای پارسایی گام بر نداشته و قربانی شایسته ای تقدیم نکرده که با اعتراف و توبه هم راه باشه گرچه داوود پادشاه بود و گفتن این براش آسون نبود اما با این حال گفت من گناه کردم و به گناه هم اعتراف می کنم در مزمور سی داوود داود به ما درباره اعتراف و توبه و تجربه بخشیده شدنش حرف میزنه زنه وقتی که ما داستان تاریخی رو در دوم سموئیل یازده تا هجده ملاحظه می کنیم می بینیم که داود به مدت یک سال گناه خودش رو مخفی میکنه میتونیم فرض کنیم که داوود در اون یک سال دعا نمیکرده، نمی نمیکرده خدا را پرستش نمیکرده و گروه عظیم کور و ارکستر شاه هم رهبری نمیکرده. در اون یک سال داوود برخلاف عادت همیشگیش به خیمه پرستش هم نمیرفته. به لحاظ روحانی داوود ضعیف شده بود و تواناییش به عنوان پادشاه در هم ریخته بود. یک بار یک تکه سرامیک عتیقه رو دیدم که بر روی اون نقش صلاح سوار بر اسب بود. پایین اون تصویر این عنوان نوشته شده بود: من قوت هزار مرد رو دارم. چون قلب من پاک است برعکس اون هم کاملا صدق میکنه وقتی در زندگی مرد خدایی گناه هست اون مرد از لحاظ روحانی ضعیف میشه و رهبریش دار میشه شبانی او مختل میشه او به عنوان یک رهبر برای خدمت به قوم خدا ضعیف میشه چون رهبران ترس باید نمونه باشد داوود همه اینها رو در طی یک سالی که گناهش رو مخفی میکرد تجربه کرد اما وقتی اون نبی شجاع ناتان داوود رو توبیخ کرد و با گناه او مقابله نمود اون موقع داوود به ما نشون داد که چطور با پیروزی از شکستش بیرون میاد داوود به گناهش اعتراف کرد و از گناهش توبه کرد او در مزامور دو به ما درباره نتایج اعتراف و توبهش میگه شخصی گفته مهمترین چیز درباره تجارب روحانی جزئیات اون تجربه نیست در کتاب مقدس مشاهده کنید که چطور مردان بزرگ خدا تجارب روحانی داشتند و جزئیات تجارب اونها خیلی متفاوت و متغیر بود اما به این توجه کنید نتیجه تجارب آنها خیلی شبیه به هم هست داوود در مزمور 32 درباره نتایج تجربیاتش از اعتراف تو توبه با ما صحبت میکنه از این رو اینطور بیان میکنه خوشا به حال آنکه اسیانش آمرزیده شد و گناهش پوشانیده گردید خوشا به حال آنکه خداوند جرمی به حسابش نگذارد هنگامی که خاموشی گزیده بودم استخانهایم میپوسی. از ناله‌ای که تمام روز برمیکشیدم زیرا دست تو روز و شب بر من سنگینی میکرد. تراوتم به تمامی از میان رفته بود به سان رطوبت در گرمای تابستان آنگاه به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرمم را پنهان نداشتم و گفتم اسیان خود را نزد خداوند اقرار خواهم کرد و تو جرم گناهم را عفت کردی از این رو باشد که هر پیرو سرسپرده تو در زمانی که یافت می شوی به درگاهت دعا کند حتی اگر آبهای بسیار سیلان کند هرگز بدون نخواهد رسید چیزی که داوود در مزمور سی و اینه که اولین نتیجه تجربه اعتراف توبهش آمرزش گناهان و برکت آمرزشش بوده هر شخص خداترسی باید این گونه دعا کنه. آیا این اشاره بر این داره که هر شخص خدا میتونه گناه کنه؟ البته که میتونه. هیچ چیزی در کتاب مقدس نیست که بگه انسانهای خدا ترس نمیتونن گناه کنن. یا شما باید اونقدر خدا ترس باشید که مصون از گناه کردن باشید؟ خشدار گناه اینه. پس اگر گمان میکنید و استوارید به هوش باشید که نیفتید. ایمانداری که فکر میکنه نمیتونه گناه کنه، دائما در معرض خطره. داوود در مزمور 32 میگه وقتی که از اعتراف امتناع کردم، وقتی که نخواستم گناهام رو اقرار کنم، بسیار بدبخت بودم. به لحاظ جسمانی بیمار بودم، گناه در قلب و جانم جسم جسمم رو بیمار کرده بود. اگر مزمور رو به دقت بخونید، خواهید فهمید که او چی میگه. داوود در ادامه میگه اما وقتی اعتراف کردم همه چی عوض شد کلمه اعتراف در منبع اصلی به معنی یک نواخت صحبت کردن هست معنی کلمه اعتراف در عهد جدید همانندی و همسانی هست یعنی شما حرفتون با حرف خدا یکی هست یعنی با خدا موافقید حالا داوود میگه وقتی من این کار کردم چه شادی و چه لذت و راحتی به خاطر برکت این بخشش پیدا کردم اونهایی که خدا ترس هستن باید دعا کنن آیا تا تعالی از خودتون پرسیدید که از کجا باید بدونم گناهانم آمرزیده شده؟ بعضیا میگن چون کتاب مقدس اینطور میگه میفهمید که گناهانتون آمرزیده شده. کتاب مقدس میگه و من باور میکنم که گناهم آمرزیده شده. کتاب مقدس میگه و اگر من شک بکنم سبب نگرانیم میشه. یک راهش اینه که چون کتاب مقدس گفته و شما هم باورش دارید میفهمید که گناهانتون آمرزیده شده. راه اینه که وقتی گناهان شما آمرزیده شدن، اون شادی و آرامش و راحتی رو در خودتون احساس میکنید. اما من و شما هم مثل داوود باید عواقب به گناهانمون رو تحمل کنیم. امروزه متخصصان مشکل گناه رو طور دیگه ای درمان میکنن. اونا اینطور درمان میکنند و میگن هیچ چیزی مطلقاً درست یا غلط نیست و هیچ چیزی نیست که شما مجبور به انجامش باشید و هیچ چیزی نیست که شما نباید انجامش بدید هیچ جوابت اخلاقی وجود نداره این روشیه که بسیاری از روانکاوان بی خدا مردم رو درمان میکنن اونا میگن گناه مال بچه هاست. چون فقط بچه ها هستن که اجازه میدن کسی بهشون بگه چی درسته و چی غلط اجازه ندید کسی به شما بگه چی درسته و چی غلط شما با کسانی معاشرت می کنید که پایبند به اخلاقیات هستند و فکر می کنن بعضی از کارهایی که شما میکنید غلطه و این باعث احساس تقصیر در شما میشه با اون افراد قطع رابطه کنید با افراد بیبند و بار معاشرت کنید که اونها هم پای پایبند به هیچ اصول اخلاقی نیستن و اینطوری شما هم از مشکلتون رها خواهید شد من از افرادی که امروز سعی میکنن مشکلشون رو به این طریق حل کنن در حیرتم کتاب مقدس با مشکل گناه این گونه برخورد نمیکنه داوود به مشکل گناهش اینطور اشاره نمیکنه داوود میگه من گناهکارم چون که گناه کردم من احساس گناه میکنم چون گناه کردم به نظر داوود راه حل مشکل شما اعتراف به اینه که مقصرید و گناه کردید. بعد از اون شما برکت بخشش رو دریافت خواهید کرد. گناهانتون آمرزیده خواهد شد و این روش خدا برای رفع مشکل گناه و آمرزش گناهان هست. مزمر 51 و یک درباره اعتراف داوود به گناهانش است. مزمر سیوی دو درباره نتایج اعتراف به گناهان هست و مزمر 51 و یک درباره خود اعتراف است. مزمور 51 و یک مزموری حیرت انگیزه و به ما پنجره ای میده که از اون میتونیم بزرگی داوود رو ببینیم. در مزمور 51 و یک این سه چیز رو مشاهده میکنید. اولا میبینید که داوود درباره منشأ گناهش نزد خدا اعتراف میکنه و به نظر میرسه که به خدا میگه اینک به راستی در قلب من مشتاقی و در باطنم مرا حکمت میآموزی. یعنی میگه تو میخواهی که من در این باره صادق باشم. حالا حقیقت درونم رو به من نشون بده قلبم رو و ماهیت وجودم رو در پاسخ به این درخواست خدا به داوود مکاشفه ای میده بعد میشنوید که داوود میگه به راستی که کار زاده شدم و گناهکار از زمانی که مادرم به من آبستن شد بعد از اینکه خدا به داوود این مکاشفه رو میده این درخواست بزرگ رو ببینید درخواست های زیادی در مزامیر 51 هست اما اینی که در آیه ده هست ببینید خدایا دلی طاهر در من بیافرین و روحی استوار در من تازه بساز. کلمه آفرینش در این آیه همون کلمه ابری بارا هست. اگر یادتون باشه درباره معنی بارا در مبهس پیدایش صحبت کردیم که به معنی خلق کردن چیزی از هیچ چیز هست. کلمه بارا فقط سه بار در پیدایش یک و دو به کار رفته و معنیش این بود که هیچ چیزی وجود نداشت و خداوند آفرید. در مزمور 51 آیه ده وقتی داوود این درخواست عظیم رو میکنه و میگه خدایا قلبی طاهر در من بیافرین در واقع میگه خدایا از هیچ چیزی تازه بساز چیزی در من قرار بده که در بد و تولد من درون من وجود نداشته وگرنه من دوباره و دوباره گناه خواهم کرد من نمیتونم از پس گناه بر بیام تو باید درون من ای بکنی فقط در این صورتی که من میتونم امیدوار باشم که طوری زندگی کنم تا تو رو جلال بدم پاسخ این دعا چیزی هست که در عهد جدید به اون تولد تازه میگیم عیسی میگه آنکه از جسم زاده شده فقط جسم است آیا من به شما نگفتم که شما به خلقت تازه‌ای در قلبتون نیاز دارید وقتی رسولان در عهد جدید در رساله هایشون از تولد تازه حرف میزنن اونها تولد تازه را خلقت مینامند. اگر کسی در مسیح باشد او خلقتی تازه است خدا در ذات کسی که از نو متولد میشه چیزی خلق میکنه داوود این رو وقتی هزار سال پیش از اینکه مسیح بیاد در دعاهاش درخواست میکنه در واقع داره نبوت میکنه که شما باید از نو متولد بشید همچنین انگیزه داوود رو برای این احیا ملاحظه کنید داوود میگه اگر روح مرا تازه بسازی راهای تو را به آسیان خواهم آموخت دوباره خواهم خواند دوباره همدت خواهم گفت گناهکاران نزد تو باز خواهند گشت یادتونه که گفتیم داوود واعز جماعت بزرگی بود داوود کلام خدا رو دوست داشت و شبان روز در کلام خدا تعمل می کرد او معزه کلام خدا رو دوست داشت او خواندن و تعلیم کلام خدا به دیگران رو دوست داشت او دوست داشت که رهبر پرستش باشه جای تعجبی نداره که ناتان نبی متوجه شد که مشکلی در زندگی داوود هست داوود احتمالاً یک سال تمام هیچ کدوم از این کارها رو نمیکرده بازگرداندن جان داوود این امکان رو فراهم کرد که دوباره همه اون کارها رو بکنه. در و یک داوود شکی نداره که خدا جان او رو تازه خواهد کرد و تمامی این برکات حیرت انگیز روحانی رو به او باز خواهد داد. توجه کنید در آخر مزمور داوود وقتی دعا میکنه دیدگاهی غیر نشون میده و میگه یا تو به قربانی رقبت نداری. یادتونه وقتی خیمه پرستش رو در بیابان مطالعه کردیم گفتیم که اونها حیواناتی رو برای تقدیم کردن قربانی گناهان به خیمه پرستش میآوردند. نوع حیوان و تعداد حیوانات بستگی به میزان گناه آنها و استطاعت مالی اونها داشت داوود میدونه که این توانایی رو داره که گله‌ای از حیوانات رو برای قربانی به خیمه پرستش بیاره اما این رو هم میدونه که خدا به این کار رغبتی نداره داوود به خدا میگه که تو از قربانی تمام سوز خورسند نمی شوید. قربانی های پسندیده خدا روح شکسته است. خدایا دل شکسته و توب کار را خار نخواهی شمرد. بنابراین داوود دعا می‌کند که مرا از درون بشکن و ماهیت درون مرا شفا بده. چیزی تازه در من خلق کن تا بتونم طوری زندگی کنم که تو رو جلال بدم. مزمور 51 و یک دعای زیبایی از اعتراف و توبه است. بذارید باز هم بگم اگر گناه کردید و به گناهانتون اعتراف نکردید و اگر نیاز دارید که خلقتی تازه در جان شما انجام بشه و نمیدونید که چطور به این تازگی برسید، مزمور 51 را بخونید و بذارید اون دعای اعتراف و توبه شما باشه. در این صورت میتونید اعتراف و توبه زیبایی برای گناهانتون بکنید. وقتی دوم سموئل یازده تا هجده رو میخونید، بزرگی داوود رو حتی در زمانهای شکستش میبینید. بزرگی او به این دلیل نیست که او شکست خورده بلکه به این دلیلی که میدونه چطور در شکست پیروز بشه داوود به من و شما نشون میده در شکست هامون چیکار کنیم بفهمیم شکست خوردیم به شکستمون اعتراف کنیم و از خدا بخوایم که ما رو تازه کنه کتاب پادشاهان به ما میگه که اون گناه تنها خطای داوود در طول زندگیش بود تنها کار خطایی که انجام داد نمیدونم آیا داستان داوود رو در دوم سمائیل و مزامیر خواهید خوند و اجازه خواهید داد که داود بهتون نشون بده چطور در شکست ها پیروز بشید و چطور در راههای پارسایی گام بردارید که جانتون رو تازه کنه یا نه. اما امیدوارم این کار رو بکنید. دانشجوی عزیز، اگر شما عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و ناجی خود پذیرفتین، کلام خدا میگه که ما فرزندان او هستیم.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 به گناهانتون اعتراف کنین و بخشش او رو دریافت کنین و مانند داوود و زندگی کنین. ترتیبی بدین که هفته آینده در ادامه بررسی کلام قدوس خدا با ما همراه باشید.